اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قسم به روز آن هنگام که آفتاب براید و اللین اذا و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد ما ودعك ربك ما قلا. که خداوند هرگز تو را بانه نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و آخرت خیر من الاولا و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است ولسوف فترضا. و به پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ و تو را گم شده یافت و هدایت کرد. و تو را فقیر یافت و بینیاز نمود فا اما الیتیم فلا تقهر. حال که چون این است یتیم را تخدیر مکن و السائل فلا تنهر. و سؤال کننده را از خود مران و اما ربك و نعمت های پروردگارت را بازگو کن